بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وأسكنوا فتيح جناته وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح فالجمع بين بين سمتين لحديث واحد مجاذبه مسلخي للمهمي هذا بعد از این که ما بحث حسنو کردیم و به این که حسن در نظر علما به دو یک بحث حدیث حسن به غیرهی و دو اومن حدیث حسن لذاتهی این دو قسمتی که از گفته خطابی و گفته ترمیزی و گفته همام حاکم و خیلی از این میگیم امام ابن سلاح برداشت کرده بود خب خلاصه بندی که بحث حدیث حسن لذاتی و حسن بغیرهی جنبندی شد الان اومدیم به بحث این که امام ترمیزی محصدش از سخنش که بیگه این حدیث حسن و صحیح هست چیه؟ ما قبلت این که به این گفت بپردازیم ما اشاره کردیم ایک از کتاب هایی که در بحث بردفی اقوال متقدمین اقوال عیمه قدیم مثل احمد و محمد مثل بخاری مثل ابن معی مثل ابو حاتم راضی مثل ابن حوی حاتم و دیگر علمای متقدمین نوشته شده از علمایی که پیش در بحث جمعاوری احادی پسخیح و جرف و تعدیم ما ببینیم که اصطلاح حدیث حسن را به کار بردن لیکن آیا میشه گفت اون لبزی که یا اون حدیث حسنی که در باری بعد احادیت ما بخاری به کار میبره یا احمد روح هم بعد مقصدش همان حدیثی حسنی هست که ما من اصطلاح گفتی یا نه ما گفتیم بهترین کتابی که نوشته شده در بحث تقسیم حدیث کتاب امام علام روی احمد خلیف که یکی از بزرگترین علمای این قرد در علم جرفت حدیل به حساب میاد و در علم حدیث که امام آلوانی به علمش و منزلت حدیثش که واقعیده حالا هرچنگ که خیلی در بحث عقیقی ازش به بدی یاد میکنن میگن که فلان شخص مدخلیه یا مداخله یا فلان از این الفاظی رو کار می کنم که ما در شعر نه،, نه شدیم از این لقب ها ولات نرزو به ال این لقب هایی که روی اون های می گذارن که از شاکام دفاع می کنن حالا خود علامه ربی مت کلی یک از علمای مدینه بوده لیسانسش در مدینه گرفته فوق لیسانسش همونجا دکترا همونجا دکترا حدیث داره ده ها سال طلب علم داشته عمر شمنان بالای افتاد ساله الان ساکن مکه هم هست خیلی ها توقع دارن که علام ربیه مدخلی بیاد فکام را تکثیر بکنه و بیاد یک نهانجه سیاسی بسازه و میان به خاطر دفاع از اینکه کسی به بهتان تکفیر بشه میاد خب موقف میگیر از اونها ردودی می نمیسته بر مخالفی اونهایی که با اهل سنت مخالفت دارن در بحث تکفیر حکام مثل سید خود و دیگر و مؤلفینی که بحثه که اومدن و حکامو تکفیر کردن اومدن را به امام علی با برسی حدیثی و با برسی عقلی سلاحو مجادله بر این خوده در نتیجه اونهایی که الا تکفیر نمیکنن حکام رو بهشون میگن مخری بهشون میگن اینا خائنن یا اینها فلسفنتیان یا اینا نمیدونم درباریان از این القاب. از این لقب هایی که خداوند خوشش نمیاد بر مؤمنان داده بشه به این علمای حبانی، این علما که حالا حسن ما از اونها علم دیدیم، ما از اونها شهادت حق دیدیم، ما از اونها علم صحیح رو دیدیم، ما از اونها برکت قلم دیدیم، تالیفاتی که گذاشتن از خودشون، کتاب هایی که نوشتن، در دفاع از اعیم از امام مسلم از امام خودنی کتاب هایی که حد تحقیق کردن برای ما، علمی که برای ما گذاشتن khidmatī hast ke anjām dadan nususi hast az darvare aqide darvare ilm hadith baran vahd kardand ke ma betunim sahih ro az za'if tashkhis bedim ma betunim rawi za'if ro az qavi tashkhis bedim hob in ulama zahmat keshidan vazife ma chi ast vazife ma dar qobal un ulama'i ke khodoman azashun آیا در رتبه ملاقاطه قرار میده هل صینن لین یا علمون وال لین لا علمون؟ آیا میشه مساوی قرارداد آن هایی که می دانن آن هایی که نمیدانند. آیا میشه سیز خود را با علمه قوی ملی مقایسه کرد؟ س خود چه ساله میگه من مسلمان شدم وقتی که آمریکا میرفتم تا بی سال چه سالگی میگه من سح و ش دو بادی می و نمی میم تلس متاوویض می نوشتم آیا میشه مقایسه کرد؟ کسی اساس و تحل به نداشت؟ کسی که تربیتی دینی داشته با کسی که اساس و منهجش تربیتش در زیر دست علمای ربانی امثال حافظ حکمی بوده حافظ حکمی کیه؟ علامه حدیث صامته که در نزد علمای حدیث پاکستان و هندوستان در بوده یک از علمای بزرگ عربستان یک از شاگردان بزرگش علامه ربی احمد فکر نکنیم که این علمه که ما داریم یک هو مسلمان شدن و یک هو بدن تعلیف کنی میتن و از حکام بیان دفاع بکنن نه ده ها سال بلکه بیش از پنجه سال زیر دست علمه شاقیده میکردن تا قبل از این که علامه آلبانی فتو کنه از کسانی که از نشون شدیدم مثل علامه عبدالباری هندی که در حال حاضر در اماراته خودش نمی می کنه میگه علامه البانی مویده بود در فکرم در سال هزار چهار سال سیزه بود فکرم همین حول بوش بود که میگفت که اومده بود به بکه علامه حبی امرخلی با اون ریش سفیدش با عمر بیش از شست سالش در تلسی علامه البانی میگه دستشو بالا میکنه به با عنوان آگرد اگر کسی که تو اصابتادگی خودشو شاگرد به حساب میاره شاگرد اون علمان از علمان میگیره ب خوی علما می نشینه مثل <سؤال> ابن و مثل البانی و ابن ابی ابن سبنان سی چی تصرف داریم؟ آیا غیر از علم از اون ها خارج بشه آیا اونها بیان دینشون رو به خاطر از دنیا بفروشن خلاص تالیفاتش تالیفاتشون موصفانه بکنیم مگر چه گفته این ما حقی درباره سیرت گفت مگر چه انتقادی ما حقی باشه مگر عقیدتنا قادر نحق جون مگر دفاع از عقیده اسلام تورمن این مسائلی که حق باید بیش توجه داشته باشه باید بیش نظر داشته باشه انصاف داشته باشه. باید کتاب های اوامما رو منصفانه بکنه نه اینکه با مجرات تهمت دست تو گوشش بذاره و قلبش رو پلم بکنه حقی تو قلبش نره و جعل علىقلوب قلوبهم ا ان ف قهوب آدن هم مقره قلب و گوشش پلم بشه دیگه حقی شنه. این کتاب ها رو درش ببنده. این کتابهایی که حق بشه. شیطان راست میگه ولی ربی راست نمیگه چطوره که انصاف ده ده ما اجازه میده که بگیم رسول الله درست گفتن که شیطان احتماع در راست بگه ولی ربی مدخلی نه راست نمیگه خب بکنیم که انصاف به خودمون ببین خب یکی هم. از مسائلی که حلان ربی اومده سینه سفر کرده براش بحث حدیث حسن بحث مخالفت و مبارزه با کسانی که اومدن بنفر کردن با منحج ابن حجر منحج امام نووی و اونهایی که اومدن کتاب های این علمان را آتش دادن به علت اینکه که بله نووی نمیدونم عشعری بوده ابن حجر یک این عشعریت بود خیلی از علمای حدیثی که یک عشعریتی، یک اختلافاتی و یک مخالفاتی در عقلی سلفتر مثل حداد که اومد در مدینه و کتاب های امام نبوی و امام حجر رو جمع کرد و به هیزوم و آتش کشند اما این کارشون اشتباه بود علامه روی هم اومد باشون برخورد کرد و کتاب های در وقت اونها نوشد این اشخاصی اومدن این کتاب های علمه رو به عنوان به خاطر اینکه که بعد از مقالفت آتش دادن علامه امام حجر و همچینین نبوی ما مدینشون هستیم همچینین امام نبوی مصطلح حدیث بخدا همین دیگه شیخمون عباد محدث المدینه همیشه در در صحبتش میگه میگه که شخص مجینی در قرن 9 ابن حجر در قرن 15 علامه آلبانی این حدیث رو برای ما نگه داشتن نجاح داشتن وقتقدرشون بدونی هم در حال حاضر دو تا علامه های بزرگی که ما داریم علامه متقدم رشتن عباد در علم حدیث و علامه خدای ما را برای منحس بکنه اینا سینان را سفر کردن در دفاع از اصحاب در دفاع از راویان حدیث در دفاع از علم مستلح حدیث او اشخاص اومدن که این علم حدیث علم مستلح حدیث را خاطر شبهاتی که دارن بخاطر غرز اغرازی که دارن یا غرزه هایی که دارن فتنه هایی که میخوان بقا بکنن و بهش دوچار شدن اومدن اون اعتقادی که دارن بر حق اون اعتقادشون بر قواعد ائمه و علمایت گذاشتن شوک گونه مثل عبد الله بن سعد مثل ملي بودي مثل حكم شري ايناي كه الان در صحه در عرب سننت كه علامه الباني ميگه هاولا ولا محدثي محدثه و من گفتم به بين متقدمين و متاخرين كلام متاخرين ما قبول نداره ابن حجر برید دور نبیان امام ابن اثر فرید زور اینا حرفشون قابل قبول نیست کلام های متکلمی رو در ائمه صلاحه وردن نبیان فران همه کتاب ها رو به دور ریختن حالا گفتیم حتی اونا هم آمدن به خاطر ارتقا کتاب ها رو با آتش انداختن اینها اومدن اینها اومدن بین متأخر متقدمین و متأخرین فرق گذاهران آلا اسبابش دو تا سبب اصلی من میگم یک سبب بحثه کامله احادیتی هست آثاری هست از جمله ابن عباس در آیهی که گفتیم شا من نمیحکم با از الله فالاکم الكافرون ابن عباس بیه کفرون دونه کفر خب این آثاری که هست در اعتقاض اومده در علم خرور بر حکام در این که کفر حکام کفر دونه کفر کفر از غره خب این کتاب هایی که هست این این چیز هایی که نوشته شده اومدن باش بر پرد که ما چیزی مثل حدیث حسن نداری حدیث به طرقش حسن نمیشه و این آثار آثاره دربار همش ضعیفه برای خودشون بر این بنای اساس اعتقادی انحراف اعتقادی که داشتن برای خودشون قواعدی گذاشتن که سبب شد که چی سبب شد یک منهج جدید بیاد در تشریح احادیث یک مسئله اول مثل دوم تعصب تعصب احمد بن چون او احادیث حسن لذاته و غریبی و لذاته غیره و لذاته داره ناز امام احمد دغوده و ناز فنان نگوده در نتیجه چی گفته چی گفته این علم علم مصراع حدیث یک علمی که پایه اساسش کاملا ریخته و دیگه کسی نمیتونه مرتبش بکنه و یا منظمش بکنه بحث استقرای این اعیمی اومدم کلام متقدمین رو براتون كردم برای ما در رواویان در احادیث چطور میشه که جودتون ما به باد بدیم زحمتهایی شین پس نمیشه زحمتشون رو به باد داد. این شما هاست این تع سوبار صد شد که کتابایی را میگ مین در سفرران ها آلبانی رو از به نام متسااح یاد بکنن آلبانی متسااحده و حاضثتان هموریتهیم میکنه ما در ند متقدیم حدیث حن رو نداشتیم خب این عاخ که از بیرران رو موارد شدن و در بج مه رو مجبور ساختن. البانی را مورد دانستن از لحاظ دا اعتقاد از لحاظ علمی گفتن متساهله و جنبشات و حدودی که در صحه اسلامی ما می‌بینیم علامه بن بی متنی اومد از این علماء دفاع بکنه و هایی که در این زمینه نوشته در بحث حدیث احاد و در مباحث دیگر علم مصطلح حدیث از جمله هایی که نوشته نجست ما گفتیم تقسیم حدیث از لحاظ صحت و حسن بودنش و ضعف بودنش یعنی تقسیم حدیث به سه اعتبار صحیح و حسن و زیف خب ما در این زمد کتابی نکشته و اقوال عیمه متقدمی رو بررسی کرده خلاصه صحبتش خلاصه حرفش امام ربی احمد کردی میگه که من بعد از بررسی اومد بررسی کرد گفتی امام بخاری احمد محمدل و غیره خلاصه شینه میگه که امام ترمیدی اصل و اثاث در تعریف گذاشتن برای حسن قبل از امام ترمذی ما یک اساس و یک معیار منضبطی نداشتیم برای حدیث حسن خب اومد پنجم تا و آورد از گفته های امام بخاری درباره این حدیث گفته حسن در روی این حدیث گفته حسن احادیثی که درباره اش گفته حسن راویانش اومد بررسی کرد دید که این حسنی که امام بخاری به کار می بره و امام ترمذی هم جاهای ازش نقد میکنه این حسن حسن لغوی نه اصطلاحی یک راوی ماثور ولی امام بخاری درباره روایتش میگه حسنه چطور میشه یک روایت که راویش متروکه و امام بخاری خودش هم تاییدش میکنه چطور که چطوری ما بخاری درباره اش میگه چی این حدیث حسنه معناش حسنه حسن از اعتبار به اعتبار لفظی نه به اعتبار راویانش چون غیر ما ممکنه که روایتی مطروب درش باشد و به درجه حسن لغیرهی برازه. هیچوقتی میرازه. تخوییت نمیشد. امام حراند حنبل هم همچنین. امام ابن معین هم هم همه اعیمه. حسنی که در باره احادیت به کار بردن یک حسن لغوی. حسن ظاهری. با حدر همینه که امام ظاهری میگه بررسی و تشخیص معیار حدیث حسن و حسن كار كار حسن یا تعریف حدیث حسن یکی از بزرگتری و مشکلتری کارها کار مشکلیه که برای برای حدیث حسن بخواد یک منذبط های یا ذوابتی انسان بگذاره خب یک مثله مثله دو درباره حدیث حسن ما میبینیم که ایمان محلو نحنبل قبل از جاهایی درباره بعد از حادیث میگه این فلان حدیث حسنه آیا بعد از این ما گفتیم حدیث حسن بین صلاحاتی که ما داشتیم عیم متقدیم این نداشتن و این حدیث حسنه که نام بردن حسن لغویز از لحاظ لغته آیا حدیثی که چهر دو شروط حسن داشته باشه امام احمد الحنبل می پدرخی یا نه یک مثالی از قادی این مثال چیدینه که امام احمد الحنبل می گویند که من از اینکه که به حدیث ضعیف بشم بهتره از اینکه که بیام متمثق به رعی و اشتحاد خودم بشم. فکرم مقدم بر حدیث بکنم. یک حدیث ضعیف باشه بهتره در رعز من. بهش عمل بکنم تو اینکه که بخوام اشتحاد بکنم در یک مسئله. خب متعذفان خیلی ها آمدن گفتن که بله. حدیث ضعیف در فضایل عمال قابل قبوله. قبوله و احمد نحن قبول کرده اومدن برای خودشون تلصف دوختن و بافتن اولا امام احمد گفت حدیث ضعیف نموضوع موضوع هیچی قدعیمه قبول نبشن شمایی که می آید در هاتون فضایل اعمال و حقاید موضوعی که در اشتر را قبول میکنید و به مردم می هیچ امامی مطلقا و خاطبتا نگفته که جائزه برای مردم حديث موذی روایت بکنی بلکه رسول الله در حدیثی که در نزد مسلم شناعتا برخورد کرده با این فص و گفته من راى انی حدیثا يرى انه كذب فهو أحد الکاذبین او كما قال صلی الله علیه و سلم یک حدیثی که بوی دروغ ازش بیاد لم بشی که دروغ است یک حدیثی که دروغ باشه به مردم نقل نکنی نری تحقیق بکنی نری بپرسی از علما تو یک از دروغگانی فرقی و آن کسی که این رو دروغ بسته نداره پس باید در نقل احادیث مردم باید چی ایمان داشت تقوا داشت این رسول الله از خداوند داره به ما نقل میکنه انه لا ينتق عن الهو الا وحی یوحى ذحک اثر خداوند نه باید دروغ بچسبونی به وحی خداوند یسترون على الله الکاذب نجیم ناشیما جمله کسانی که دروغ بر خداوند می‌بندند دروغ بر رسول الله دروغ بر خداوند بریم این رو تشریح میکنیم داریم یه چیزی رو از زمان خدا به مردم تکلیف میکنیم حتا که میگه فضایل اعمال تکلیفی داریم می‌کنی مفوق فقط دین دین دیگه کامل شده علیه اتمل تلکم دینکم ذکرای خوده صد بار تمام شد رفت حتا که هزار داد خوبه لیکن اگر خوب بود رسول الله سر قط این کار و این خوبی که میارید مناقض باید کامل بودن دینه. از کار بعد از نما داریم 33 بار. حق نداری که بگیم 40 بار و 50 بار. هرچند که ظاهرش اینه که بهتره از 33 بار. نبود قاطعی بکنی بینیم مز... مسائل. پس میان به تحریر گفته ایمام حلان رحمبل. میگه من این که از اینکه که متمرسک بسم به حدیث زعیب بهتره از اینکه که چی؟ به رعیم بشم. ما از این گفته همونطوری که همونطور که امام ابن تیمیه براش مثال میزنه اینجوری میفهمیم ما با, با به صاحب فن بر بگردیم از حال مذهب ابن تیمیه یکی از کسانی هست یک از شاگردانی هست که از مدرسه حنابل فقرا تحصیل شده امام ابن تیمیه میاد اینجوری تحلیلو رو, رو میکنه به همینجوری آیمه دیگه غیر از ابن تیمیه ابن تیمیه آیمه متقدمی مثل حاکم و دیگر آیمه و امام خطیب اینها چی میگن میگن حدیث ضعیف در نزد امام احمد وقتی اعتبار داره وقتی میشه بهش متوستک شد وقتی میشه بر رعی مقدمش که زعبش یفیر باشه که طرق باشه این ضعیفی که امام احمد میگه بهتره, بهتره از رعی همون حسنه پس ما از این گفته این چونین برداشت میکنیم حدیث حسن گرد چه در نز متقدمی نبوده لیکن معایرش بوده مثل همین گفته ایمه هم محمد محمد این زعیفی که از رعی بهتره چه زعیفی که گفتیم همون زعفی که منجبر باشه الان یا حسن لغیرهی باشه یا حسن لذاتهی باشه و بعضی از علمای دیگر ما میبینیم که در اصطلاحاتشون اگر بحث حسن ندارن و حسن در ضمن زعیف معتبر بهی گنجانده نشه میبینی که صحیح در نظرشون دو قسمته یکی صحیح به ذاتش و یکی صحیح به غیرش که حسن الغیریهی و حسن لذاتیهی را هر دو در صحیح چیز؟ صحیح الغیری بوندوندن پس ما از علمای متقدمین، گرچه اسم حسن نداریم ولی معیارهای حدیث حسن رو داریم. جلسه ای میگم الان حدیث حسن رو برای ما ذکر بکنم و یاد بکنن لکن اساسیاتش، قواعدش و مناهج علما گواه بر این مساله است. خب گفتیم مشکل رو حل بکننم امام ترمیزی میگه درباره بعض از احادیث حسن و صحیحه میگه این گفته های مشکله چطور حسن از لحاظ قوت پایین تر از صحیح چطور میشه که یک حدیث هم صحیح باشه و با هم حسن باشه هم رتبه پایین داشته باشه هم رتبه بالا میگه میشه دو سا روح بداشته باشه ابن حجر چی میگه میگه این گفتی امام ترمیزی از دوشت خارج نیست یا اینکه حسن صحیح پایین تر از صحیح که در این صورت میشه غریب باشه. به خاطر تسرد یک راوی یعنی یک حدیث حسن لذاته ولی صحیح به اعتبار معناش یا بعد باید, باید طرق دیگرش یک امام متردد میشه که آیا این حدیث صحیحه یا رتبهش حسنه حسن که هستد درستد براش لیکن الان در صحیح بودنش متردده پس رتبه اول اینکه حدیث حسن صحیح پاینتر از لفظ صحیح تنها باشه که در این صورت اون اعتراضی که شده، اعتراض شده، اعتراض چیه؟ میگه که امام ترمیزی گفته در مقدمش، در کسان به عللش، که ابن کسیر اون این کار میباده، در صورتی که این گفته گفتیم درسته. که امام ترمیزی گفته حدیث حسن، حدیثی که از غیر بجر باعث شده و راویان مسهمه به دروغ و دروغو درش نباشه. خب ما از این اصطلاحات لیچه این که حدیث حسن در نظرش حدیث چیه؟ حدیث حسن بغیری خب اعتراضی که اینجا هست اینه کسی چطوره که این حدیث حسن صحیحه و خود و غریب هم هست که غریب تر یک اومده و خود امام سرمیزی نیگه چی حسن در نظر من افدیر بچ باش اومده باشه حسن به غریبیه چطوره که از تم تریخ اومده و غریب هم شده امام امن حجر دیگه چی؟ میگه باید این دو مسئله را از هم تفکیت این تعریف امام ترمیزی درباره باری حدیث حسن وقتیه که درباره یک حدیث بگه حسن یک حدیثی در بارش بگه این حدیث حسنه این حدیث یکی ای چی؟ از غیر وجه امده برای متهمه درشن اما اگر گفت حسن و صحیح با هم لازم نیست که این حسن همون حسنی هست که تعریفش کرده این اصطلاح دیگری هست که ما ترمذی به کار برده در نتیجه در نتیجه چون احتمال داره این حسن لغوی باشه و یا حسن لذاتهی باشه هیچ منافاتی نداره که این صحیح هم باشه صحیح لغری باشه و غریبم باشه منافات داره منافاتی نداره پس به خاطر متردد بودن یک امام یا همون امامی که همون امامتر امام میدیم یا لفظ حدیث حسن و صحیح بهش میده و صورت دومش که که این حسن و صحیح بالاتر از لفظ صحیح باشه و اونم در صورتی که چی؟ حدیث غریب نباشه حدیث غریب نباشه حتما فرقی داره جاهایی که میگه حسن و صحیح و جایی که میگه حسن و صحیح و غریب فرق داره با حسن صحیح تنها ستا لفظی که با هم میاره حتما فرق داره خب اگر این حدیث دو تا اصنات داشته باشه یکی صحیح باشه یکی حسن در این صورت اون چی که لمسی در نظر ابن حاجر اینی که میگه ин хадис бо خاطر ин ки қувват пайдо карде аз хадиси сахих танхай ки мутафарриде аз як қарихамаҷа тӯй карда. мисли хадис лаула лаула ан ашукка ала умми лаамартум бис-сивакъ инда кулли салат. дуруси хадис ла кулиё. бухори ва муслим. фа ин хадис дурх доред. که <مختلفة> مختلف در اختلاف شده از صحی حدیثش روایت میکنه از طریق محمد بن عمر اصل حدیث این چه این راوی محمد بن عمر که محمد بن عمر رو تصدیق کنم حدیثش حسن لذاته است لیکن چون اصل حدیث در صحیح بخاری حدیثی رفسش بلامذه حدیث رفسش بلامذه این دوت میر حسن صحیح به اعتباری، از آن که از گفته های ابن حجر فهمیده میشه. شود. به این اعتبارهایی پایین کرد صحیح تنها است. و به دیگر براتر از صحیح تنها است. حالا اون چیزی که ما هست باید بزنید. حالا خلاصه به جنب هم پایین کرد شرد. حالا بعد از این گفته های معلف بکنیم همونطور که در بحث احمد بن حنبل گفتیم در بحث امن معین و غیره اون چی که بیشترین وجه داره یا بالاترین وجه را در ترجیح دادن این حسن داره در اساس اون چی که علمه دیگر گفتن اینه که این حسن حسن لغوی باشه حالا میاد در تقسیم بندیمون و дар он алиботайvarphi alam gozashand vaqtiki alo in hasan pasdan digari misl-e sahih yo hasan al-azīz hordeh bash. Ho vala do bolash mikonim. Migi wa 'ajiba an hadha shay' la yanhadu abada. Wa huwa anna dhalika raj'un ila al-isnad. Fa لا نعرف الا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب بل همین مثالی که ما داریم امام ذهبی چنین میگه میگه اگر این مسئله حسن صحیح برگردد به اسناد که از طریق حسن باشه و از طریق دیگری به اعتبار اسنادش صحیح باشه پس در صورتی که بگه حسن صحیح و نمی مگر از این وقت یا این حدیث غریبه این یک قدفیه در این جمبندی یک اشکالی هست در این جمبندی یعنی اینکه ما بگیم به این اعتبار اثنات حسن به این اعتبار دیگر صحیحه بلی ما گفتیم در گفته دومی دو که اون حجر گفته بود که اینکه این حسن صحیح میتونه از صحیح تنها براتر باشه به اعتبار دو تا اثنات وقتی یکی چی غریبی در بارش نیاره و نگه لا نعرف و من هده الواجد اما اگر دنبالش بیاره لا نعرف و الله من هده الواجد و یا غریبه ما میتونیم همون گفته ابن حجر اولو ترجیش بگیم و آنم این که چی این حسن یا لغویه یا حسن لذاتهی که چی منافذ باسحت نداره و حسن اله میتونه چی از یک طریق اومده باشه و میتونه صحیح از لحاظ معناش باشه یعنی دو تا, دو تا ترجیح میشه داد یعنی گفته اول ابن حجر و این جنبندی که ما میکنیم یا اینکه این حدیث حسن معنا باشه معناش حسنه و اثنادش صحیحه اثنادشون لازمی صحیح بودن اثناد صحیح بودن حدیث هست نیست؟ نیست یک حدیثی اثنادش صحیحه لازمی که متشم صحیح باشه خیر میشه یک اثناد صحیح باشه ولی متشم شارط باشه همون حدیثی که ما گفتیم در نظر صحیح مسلم حتی علا یدری یمین همه انتقه شماله این حدیث شارطه با این لب دست راستش ندنیرد چپش شیداده انفاق کرده صحیحه دیگه متنش شازه متنش ضعیف خب پس در گفتنی اولمون این که حسن باشه از لحاظ لغوی صحیح باشه از لحاظ ذات اثنانش و به اعتبار دیگه میشه گفت این حدیث حسن لذاتی باشه برای معناش هم صحیح باشه لازم نیست که این, این صحیح صحیح چیز اصطلاحی باشه چون امام ترمیزی برای صحیح تعریفی نگذاشته و تعریف برایش یاد نکرده پس یا میشه حسن از نحاظ معنی صحیح از نحاظ ذات اصنادش یا حسن از نحاظ اصنادش алянов iphdi hizda buts txf yhaad af mama aemae inor umaa howq eidsa q Labor אח ilfi saqy hatq wired ibsi q fati ka fi dh ak Hadita b вот sesti su chambandamand yye iam Icham khoafi qawafi qawafi qawafi qawafi qafi qawafika wya ynak espe majdashank dhaiak i He told his summer band law he told him there. For he told he said quicata, it's not evil or do either. He told him that he said that he said exactly where the way Ds but I feel he told me من the man with this mail Copyright Braid banks, Ds he says, What ما he do to his ades and i said that what he Porath's name is not غیر ممکنه که این حسن و صحیح با هم جمع بشن بخاطر این که یا بخاطر این, بخاطر این که امن حجر گفت که میشه از لحاظ دو تا اصناد باشه چون در بعض جاها گفته غریب یا نمیدونم مگر از این وجه ما گفتیم به چی لازمه اون حرفشون نیست که همه جا همونطور که گفته امن حجر هست باشه یعنی هر, هر جایی که بوده بحثش حسن صحیح اما حسن صحیح غریب باشه بلکه جهای حسن صحیح یک ارذوار داره برای خودش معنا داره و به جای اینکه گفته حسن صحیح و غریبی غریب هات یک معنای دیگری داره میگه او حثوقن یکون مراد او بالحسن المعنی اللغوی میگه به احتمال داره همون چیزی که من گفتم میگه احتمال داره که این حسن لغوی باشه لا الا اصلاح و هو اقبال النفوس و استغاء الاسماء الى حسن نفس او را انکار نکنه و گوشها او را استنکار نکنه و متنش حسن باشه و درست باشه یک درستی در متنش باشه و جزا نتنقضی و ما فیهی من الثواب والقیف و کثیر من المتونه نباویه به های المتونه چو خیلی من این نباویه اینچینینه یعنی ظاهر مدنشون حسنه قال شیخون ابن وحب ابن وحب محمد ابن علی ابن وحب ابن مطيع مشهور بابن دقيق العيد كان ابن دقيق العيد هو مؤلف احلى كتاب الكفايه ما ابن حجر الخلا الامام الذهبي خلاصه اشكده مين قال قال شيخ ابنوه يا ابن, ابن دقيق العيد فعلى هذا يلزم اطلاق الحسني على بعض الموضوعات ولا اقائل بهذا اي ارتحت حسن حسن اللغوي باشه پس میشه بعضی از موضوعات که معنای درست درون حد بهش گفت حسن آیا این گفته درسته؟ خیلی لازمه ای این که این حسن لغوی باشه لازم نیست که چیه؟ بر احادیت موضوع همچی یا از درباره احادیت موضوع یا رتبه یا از احادیت موضوع به اسم حسن یاد بکنن لازمه ای این که این حسن لغویه این نیست که چی؟ که منافعاتی با موضوع نداشت باشه خیلی منافعات داره با موضوع خصوصا اینکه چی؟ میگه حسن حد صحیح هم حسن و صحیح با هم میاره اما اگر حسن تنها باشه منافعات ست در داره با موضوع چرا؟ چون امام ترمزی چی گفت؟ درش در اون اسنات راویه متهم به دروغ و دروغ نباشه و غیره بچومده باشه مدباشه. ثم قال فاقول لا يشترط في الحسن صيد القصور عن الصحيح تيجي شرط نیست که چی حسن جاء القصور اذا اقصر على حديث حسن میگه این قصور یعنی این درجه پایین على حديث حسن یعنی اگر امام ترمیزی بیاد بگه این حدیث حسنه این حدیث حسن با تر از صحیح اما حسن و صحیح تهمیده نمیشه که این پایین تر از صحیح فالقصور یاتی من قیل الاقتصار لا من حيث حقیقته و ذاته پس این پایین تر بودن به خاطر ذات حسن اگر به تنهایی بشه نه به خاطر خود اون لفظ حدیث حسن صحیح تو مقال فالرواة صفات صفات تحتدي قبول الروايه ولتلك الصفات درجات من بعضها فوق بعض كالتيقض والشد والاطقان ميگه امام ابن دقيق قال ميگه فالروايهان صفاتي دارن در قبول روايتشون يعني اون چيزايي که سبب ميشه ما روايتشون قبول بكنيم و اون صفاتشون در چه مثل حفظ و اتقان و بيداري و مسائل ديگري كه در دفتر سدي مشخصه فوجود درجهت الدنيا كصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافي وجود ما هو اعلى منه من الاثقان والشرف ميجي مثلا بالفدي كرابي ميجي صدوخه يا ميجي كرابي حافظه اي لازمه اين اينه كه متخ امام نيست اي لاز وقتی كه درجه, درجة وجدت الدرجه العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا بل شك دريشي کہ اگر بالاتر باشه پایته بر در بر میگیره اگر ما بگیم حافظ و متخله لازمه شینه که صدوق باشه علاوه لیکن اگر بگیم صدوقه احتمال داره که باشه احتمال داره که نباشه کالحفظ معصر فصحه ان يقال حسنا باعتبار الدنيا صحيح باعتبار الدب یعنی اینو میخواد بگرد. میگه که این لرز حدیث حسن الصحیح میشه گفت که حسن به اعتبار اینکه حسن لذاتیه. اعتبار پاینتر این حده. حسن لذاتیه. چون غیر ممکن حسن لغیرهی باشه. چون حسن لغیرهی نمیرسه نمی در به بصحیح لغیرهی درست. حسن لغیرهی هیچ وقت بصحیح نمیرسه. بس تنها که هد یا حسن لغبی یا حسن لذاتیه حالا اون چیزی که ما اینجا برداشت میکنیم از مدتقد میگه حسنون بحث حسن چی؟ حسنه است لوحیره میون میاره نحث لغوی ذهبی گفت و صحیحهم به اعتبار داره این اسناد صحیح است على ذلك أن يكون كل صحیح حسن فیلزم ذلك میگه که لازمی اینه که باشه و علیه عبارات متقدمین فانهم قد يقولون فی ما هذا حديث حسن فمیگه عبارات متقدمین فی لفظ متقدمین حسن چه در باره خیلی از احادیث میگن که چی حسنه موضعی یوزنند همان قبلی که پیش گفتم بعضی از در باره متقدمین ضعیف معتبر بهش را حسن میگن و بعضی دیگر صحيح ہے کہ از درجہ یاریاش پایین‌تر یعنی پایین‌ترین حد صحیح را چی همون حتم می‌شمارند قلت فاعلی مراتب الحسن خلاص میاد بالاترین رتبه های حدیث حسنون حدیث های که حسن لذاته یان ذکر میکنه عن ابیه عن جده خلاص که میزنه با عمرو بن عن ابیه عن جده. و محمد بن عمرو عن ابي سلمى عن ابي ريضه وابن اسحاق محمد بن الراهب المثني وهو قسم متجالس متجاد متجادب بين الصحه والحسن فان عده من الحفاظ صححون هذه الطرق يجب احاديث انراويين كذكر مثل بعض بن حكيم وابن عمرو والشعيف احاديث بين ابن حثمه حسن بعد لحديث الحسن الذاتي لكن اگر طرق دیگری باشه یا معناش شواهد داشته باشه در روایات دیگری حدیثشون مدرية یکی میرسه صحیح و خیلی از فقها احادیث الحسن میدونن و انعذونها من ادنى مراتب الصحيح بسفته تو اینترپرت به ذهرا بهش میدن بعد ذلك امثله كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها واخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعكن ضغره وحجاج بن الرفاء او ارقاء ووصيف ودرراج ابي السمحي وخلق او خلق سواهم ام بعد بعدهمها اشخاص ان كان در حسن بده روايتهم علماء اشكال مثل حارث بن عبد الله ك ك روایتش مکروکه و یا عاصل نظام رای سلولی که صدوخه و حجاج بن ارزایه که حدیثش حسنه و خسیب که ضعیفه بقاتل سوی حفظش و در راج که بازم توسیق شده در خیلی از علمان توسیقش کردن و خیلی از علمان تضعیفش کردن که روایتش بین زعف و بین حسن بودنه و اشخاص دیگری از علمان خب خلاصه و جنبندی میدونم گیت شدید پراکندگی ذهنی بیش اومد گفته ها متداخله جنبندی گفته های متقدیمی و متداخلین و گفته زهبی و بعد همه امن دقیقی قرعید اومد حالا بیام جنبندی بکنیم اون چیزی که الان ما لمس کردیم از دقیق شروخمون از علمانی که داریم چینینی که وقتی که امام ترمیزی بگه حدیث این حدیث حسن صحیح و غریبه معمولا این احادی صحیح لذاهیه و حسن از لحاظ معنا یعنی این حدیث صحیح اسناده و معناش هم فسد هیچ منافاتی و عقل و شرح نداره چون ما گفتیم لازمه صحیح بودن صحیح بودن متن نیست بس حسن بودن متن حسن بودن متن یعنی صحیح بودن حدیث صحیح بودن حدیث یعنی اگر که نلست صحیحه متنش هیچ اشکالی نداره با هیچ منافاتی با شرع نداره پس بالاترین گفته امام ترمذی در تصحیح این که بگه درباره حدیثی حسن هست، صحیح هست، غریب هم که مقابل با گفتیم صحیحه لدازی دوبار میتنید در که در آن خرار میگیره حسن صحیح حسن و صحیح که گفتیم دو اعتبار داره یا اینکه حسن لغوی باشه و صحیح حدیثی باشه اصطلاحی باشه یا حسن اصطلاحی باشه و صحیح لغوی باشه که این از رتبه طبقی پایین‌تره هر جایی که احتمال داره که این حدیث حسن لذاتهی باشه و صحیح غری هم باشه حسن لذاتهی باشه یعنی حسن اصطلاحی باشه و صحیح در هم باشه که بیشتر علماء میگن حسن الصحیح مقابل چیه؟ صحیح لغیرهی یعنی اینجا حسن الصلاحی یعنی حسن لغیرهی چون حسن بغیرهی غیرهی غیر مقابل صحیح بغیرهی و صحیح چیه؟ صحیحه بغیرهی گفته ی قبل حسن لغهی و صحیحی الص غریب که واضحه که از یک وجه اومده گفته دومم حسن لذاتیهی از یک طریق اومده ولی به اعتبار طرقه چون غریب نیست پس صحیح رتبه یه ثبومه گفته اچیه حسن غریب حسن غریب این حسن همون حسن لذاتیه یه چیزی که ما میتونیم بفهمیم که از لحاظ معنا حسنه ولی غریبه از یک وجه اومده در نتیجه مواضیه عتنه لذاتی قرار میگیره رتبه 4ام بعد باره بعد از احادیثی میگه حسن فقط میگه حسن که خودش تعریفش کرد شنو حسنی بو تعریفمون دروسی حدیث حسن غریبه اگر در باره حدیث میگه غریب و هذا الحديث لا نعرفو الا من هذا الوجه وهذا حديث غریب چی میفهمید نگه حسن هست صحیح، نگه حسن، نگه صحیح هیچی نگه. ده. فقط بگه این حدیث غریب یا این وجه فقط رو شده. چی میفهمید یعنی ضعیف. یعنی ضعیفه. یا غرابت معنا داره و یا غرابت اثناد. یعنی اینکه از اسنادش از یک وجه امده یا اینکه متنش غریبه. پس پاینت این روز چیه؟ غریب. پس ما از این گفته امام ترمزی، پنج رتبه تقسیم حدیث را برداشت کردیم. صحیح لذاتی، صحیح لغری و حسن لذاتی، و حسن لغیری، و حسن لغیری، قسم. درسته؟ این رتبه هایی که چی؟ از گفته ها و از تقسیمات امام فرمزی برداشت میشه. خب. را یک ردی بدید. بر عبدالله سعد بر حاسم شریف بله ای باری اونها از اونهایی که میان رد بر آلبانی میدن میگن آلبانی متساخله و احادیث حسن آخاده قبولش نداریم از این فلسفه ها استفاده میکنن در رد احادیث و در بحثان دادن بر تحمد دادنه به علماء و بدوی عالمان اولا ما در گفته های یک که پیش داشتیم بعد از بررسی و تحلیل دیدیم که این گفته امام ترمزی از خودش تنهانی بله کسان دیگه هم مثل خودش گفتن یعنی کسان دیگه هم لفظ حدیث حسن هم به کار بردن حسنن که حسنن ولی رتبه های حدیث پنجگانه حدیث صحیح لذاتی و غیرهی و حسن لذاتی و غیرهی و از ما در دفته تمامی این میمتقدمین لم میکنیم و می بینیم که چی بهش استدلال می پس اولی چیزی که به اونها می دین ما در نزد علمای قدیم این تقسیمات رو داشتیم حتی که به این اسم نبوده دو بومن اونهایی که اومدن بین متقدری رو متاخرین تفرقه بیندادن و بگن متاخرین از ایسی خودشون رو خواهد داره ما اینو بهشون بگیم شما ضابطه متقدمین مثل امام احمد محمد را در تعریف حدیث ضعیف ما بگید لطفا یا ضابطه امام احمد محمد در تعریف حدیث زعیف لطفا به ما بگید آیا این تعریفات که ابن حجر برداشت کرده یا مصباح و نوری و غیره از این اکتیفه خودشون بوده یا اینکه اومدن بعد از بررسی و تحلیل اینجینی به انبساط را گفتند خب شما مردید بیایید یک نکتی یک معرفت علوم حدیثی یک تدریب راوی یک موقضی واسه ما بنویسید لطفاً بنویسید قواعدی که متأسفانه بدی بیایید برای ما مردید بر حسب قواعد المتقدمین 40 و راوی تخریج بگیرید لطفاً میتونید تخریجو بکنید؟ میتونید لوابتش رو برای مشخص بکنید؟ حالا مردی برو تا ما ببینید. چه کار کردید روی امت اسلام؟ اگر قرار باشه این علماء جهودشون به باد بدید. این علماء این مؤمنینی که بودن یعنی همه اینها یعنی بعد از احمد النحنبل همه گمراهن تا الان تا شما بیدار شدید. و این گفتی رسول الله برباد لا تزال لا تزال... لا... لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على حق همچنان قسمتي از امت من برحق حق ظاهرند از حق دفاع میکنند دفاع فقط با شمشیر نیست دفاع با قلم هم است آیا این گفتی رسول الله برباد است و هیچ کس نیامد در احادیث الحوضه ثندن برای دفاع بکنه که شما امیدید 10 حرب بعد از اونها 13 حرب بعد از اونها کی گفتید این هر چیزی که شما در إن دهقر در این دهقر نپیش کدام یک از علما این حرفی که حرفتون مخالفت سبیل المؤمنینه و من الرسول من بعد من بعد ما تبین له الهدى و یتبع المؤمنين سبیل ما تولى ونصره جهنم مساءت مصیره این انحراف از سبیل مؤمنین انما رحمت کشیدن تا اینکه ما تشخیص بریم قواعد درفتو و قواعد قواعد تشخیص احادیث برباد دادن اقوال علما و علیکم السلام و رحمت الله بعد از قواعد دیگری که ما داریم که درباره حدیث حسن لغریه که قبول نمی کنن بعضی فکر میکنم که این مثلا این اصطلاحات ما از خودمون وردیم فکر نکنید این اصطلاحات کی از خودمون در وردیم نه از خود قران برداشت شده مثلا حدیث حسن لغری. موتدر قبل خادم بلش اساسي بيام اياه القران را بكوني خود من در قران ميجي وتشهد الشهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل و امراهان ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ليكي اجريت مثلي بشما دو تا شهيد از مرض بگيرين اگر مرض نبود يك مرض و دو تا زند خب چرا دو تا زند فالتشهد و شهيدين من رجالكم فإن لم يكن فرجل و زن زعيفة من من ترضون من الشهداء انتظلة فتذكرة احدا هر دو زعيفا اگر این فراموش کت و اون بياد بياد فس حسن لغیرهی دو تا زعيفی که بيان قواه بينام بر ایک مثله که زعتشون يسیده عدالتشون نیست مجروح ساقط نیستن بشه حدیثشون چه اعتبار پیدا بکنه به نفس فتذكر احداهما اخرى بس اگر تراموش کرد یکی دیگه بیادش میاد ما, شكينك ما همين فلان فاطمه اش اینه که ما در گفته های علمای جرا سعدی همین چیزین میبینیم مثلا چرا الحنبال فلان رو میگه فلان یعتبر به سعید یعتبر به یا فلان لا يعتبر به أو لا يحتج به این رو ولا يحتج به یكتب حدیثه الی فی حدیثش نوشته میشه برای چی؟ برای اینکه نگاه بشه در طرق دیگرش که اگر طرق دیگر تأییدش کرد بش این همون گفته احنا حنبله که حدیث ضعيف به ثلاث راءی منس یكتب حدیثه یا فلان اعتبر بده به خاطر اعتبارش نوشته میشه تا اینکه چی؟ یک مدرسه بیاد تقویتش بکنه این ذاتی ضعيفي هست که لزاته قابل قبول نیست مستجنز، مستاجني وجنه مشهده، لكن اخرى تقويات شد، در نظر امي متخدبين، مثل احسن الحنبال، مثل طمق البخاري و علماء قابل قبوله ومثالي حفظة مثالي نسبيهات، امام السوفيان السوري چنين، يقول اني لأكتب الحديث على ثلاثة وجود، فمن هما به، ومن هما أعتبر به، ومن هما أكتبه لأعرفه صحاب ماذات تعقبی میکنه میگه یه قسمتی که من بهش ست ده یعنی دیانتم اون رو قبول کرده حدیث صحیحه و قسمتی که كا... اعتبار پیدا میکنه من اعتبار بهش میدم مینیویسمش تا اینکه یک این بکنه و یک حدیث گیری که مینیویسم به خاطر اینکه و منه و لا اعرفه مینیویسم تا بفهمم رابعانه دروغ را غیر دروغ تشقیق بدم به همینین در روایت دیگر میگه احمد بن حنبل میگه ابن الدهی اما کان حدیثه بذات و ما اتخو حدیث الا الاعتبار والاستدلال ابن هذا عیفه میگه چی ما کان حدیثه بذات حدیث اون چنا نیست خوب نیست و ما اتخو حدیث الا للاعتبار والاستدلال یعنی بر اعتبار و استدلال میگیریم امام احمد بن حنبل میگه این ضعیفا این ضعیفا ی خود هم صاحب المحبات ضعیف ترصیفش میکنه میگه ما حدیث ما کان حدیثه بذات حدیثش صحیح نیست لیکن ماكتب اج حدیث الا للاعتبار والاستدلال بس برائے استدلال اعتبار بشواہد بدال میکنه نمیخوره بددر میخوره این چیزی که ما از گفته امام سفیان ثوری احمد بن حنبل و حمشید مروزی میگنت لاتب حدیث ثم كتبت اعتبره همش مروزی حمشید امام دارقطنی ما در وصف ائمه متقدمین امام نوری ذهبی بغیر متقدمین و متأخرین این تقسیمات حدیث را برداشت می کنیم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله محمد علی آله محمد